مصنوی معنوی مولوی برنامه هشتاد و هشتم پیدا کردن سلیمان علیه السلام که مرا خالصا امر الله جهد است در ایمان تو یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسنت و و نه در ملک تو خود بینی چون چشم جان باز شود به نور الله بیا که من رسولم دعوتی چون عجل شهوت کشم نه شهوتی ور بود شهوت امیر شهوتم نه اسیر شهوت روی بتم شکن بوده است اصل اصل ما چون خلیل حق و جمله انبیا گر در درای رهی در بط کده، بط سجود آرد نما در معبده. احمد و بوجهل در بتخانه رفت، زین شدن تا آن شدن فرق است زفت. این سر آید سرنهندو را بطان، آن درآید آید سرنهد چون امتان، این جهان شهوتی بدخانه است انبیا و کافران را لانه است لیک شهوت بنده پاکان بود زر نسوزد زن که نقد کان بود کافران قلبند و پاکان همچو زر اندر این بوته درندین دو نفر قلب چون آمد، سیه شد در زمان، زر درآمد شد زری او عیان. دست و پا انداخت زر در بوته خش، در رخ آتش همه خندد رگش. جسم ما رو پوش ما شد در جهان، ما چو دریا زیر این که در نهان، شاهدین را منگرای نادان به کین نظر کرده است ابلیس لعین کی توان اندود این خورشید را با کف گل تو بگو آخر مرا گر بریزی خاک و صد خاکسترش بر سر نور او براید بر سرش که <كحك> که باشد کو بپوشد روی آب، تین که باشد کو بپوشد آفتاب، خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار دود از این ملک دو سه روزه برار. قصه ابراهیم ادهم رحمت الله علیه بر سر تخت شنید آن نیک نام تقتق تق و هایهوی شب زبام گام های تند بر بام سرا گفت با خود این چنین زهره کرا بانگ زد بر روزن قصر او که کیست این نباشد آدمی مانا پریست سرفرو کردند قوم بلعجب ما همه گردیم شب بحر طلب هینچی می جویید گفتند اشتران گفت اشتر بامبر کی هان؟ پس به گفتندش که تو بر تخت جا، چون همی جویی ملاقات اله خود همان بود دیگر او را کس ندید چون پری از آدمی شد ناپدید. معنیش پنهان او در پیش خلق خلق کی بینند غیر ریش و دلق چون ز چشم خیش و خلقان دور شد همچو انقا در جهان مشهور شد جان هر مرغ که آمد سوی قاف جمله عالم از او لافند لاف چون رسید اندر سبا این نور شرق غلغله افتاد در بلقیس و خلق روحای مرده جمله زدند، مردگان از گور تن سر برزدند یک دگر را مجد می دادند هان نکندای می رسد از آسمان زندا دینها همه گردند گبز شاخ و برگ دل همی گردند سبز. از سلیمان آن نفس چون نفخ سور مردگان را بارهانید از قبور. مرترا را بادا سعادت بعد از این، این گذشت الله اعلم بالیقین. بقیه قصه اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السلام ال بلقیس را قصه گویم از سبا مشتاق وار چون سبا آمد بسوی لالزار لا قتل اشباه و یوم وصلها عادت ال و سوب اصلها. امت ال اشق في فی الامم مثل و جود حوله و لو لوم السقم. ذلت ال من اشباحها، عزت ال من ارواحها. أیها العشاق الثقیا لكم انتم الباقون والبقیا لكم أیها السالون قوموا واعشقوا ذاك ریح یوسف فاستنشقو منطقاطیر سلیمانی بیا بانگ هر مرغی که آید می سرا چون به مرغانت فرستاده است حق لحن هر مرغی بدادستد سبق مرغ جبری را زبان جبر گو مرغ پر اشکسته را از صبر گو مرغ سابر را تو خوش دار و معاف مرغ انقا را بخون اوصاف قاف مرکبوتر را هزر فرماز باز باز را از حلم گو و احتراز وان خفاشه را که ماند و بینوا میکنش با نور جفت و آشنا کپک جنگی را بیاموزند تو سال مر خروسان را نما اشرات ساب همچنان می راو حد تا اقاب رهنما و الله عالم به سواب از آزاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او از همه ملک منقطع شدن وقت هجرت الا از تخت چون سلیمان سوی مرغان سبا یک سفیر کرد بست آن جمله را. جز مگر مرغی که بود بیجان و پر یا چماهی گونگ بود از اصل و کر. نی غلط گفتم که کر گر سرنه پیش وحی کبریا سم چونکه بلقیس از دل و جان آزم کرد بر زمان رفته هم افسوس خرد ترک مال و ملک کرد او آنچنان که با ترک ناموننگ آن عاشقان آن غلامان و کنیزان بناز پیش چشمش همچو پوسیده پیاز باغها و ها و آب رود پیش چشم از عشق گلخن می نمود عشق در هنگام استیلا و خشم زشت گرداند لطیفان را به چشم هر زمرد را نماید گندنا غیرت عشق این بود معنی لا لا اله الله این است ای پنا که نماید مه را دیگ سیاه هیچ مال و هیچ مخزن هیچ رخت میدریغش نامد الا جسک تخت پس سلیمان از دلش آگاه شد که از دل او تا دل او راه شد آن کسی که بانگ موران بشنود هم فقان سر دوران بشنود آن که گوید راز قالت نملتون، هم بداند راز این طاق کهن دید از دورش که آن تسلیم کیش تلخش آمد فرقت آن تخت خیش. گر بگویم آن سبب گردد دراز که چرا بودش، به تخت آن اشق و ساز گرچه این کلک قلم خود به هست، نیست جنس کاتب او را مونس است همچنین هر آلت پیشاوره هست بی جان مونس جانوره این سبب را من معین گفتمه، گر نبودی چشم فهمت را نمه. از بزرگی تخت که از حد می فزود، نقل کردن تخت را امکان نبود. خردکاری بود و تفریقش خطر، همچو اوصال بدن با همدگر. پس سلیمان گفت گرچی فلاخیر سرد خواهد شد بر او تاج و سریر. چون وحدت جان برون آرد سره جسم را با فر او نبود فره. چون براید گوهر از قهر بهار بنگری اندر کف و خاشاک خار. سر سربرارد آفتاب باشرر دم اقرب را کسازد مستقر لیک خود با این همه بر نقد حال جست باید تخت او را انتقال تا نگردد خسته هنگام لقا کودکان حاجتش گردد روا هست بر ما سهل او را بس عزیز تا باید بر خان حوران دیو نیز عبرت جانش شود آن تخت ناز همچو دلق و چارق پیش عیاز تا بداند در چه بود آن مبتلا از کجاها در رسید او تا کجا خاک را و نطفه را و مزغه را پیش چشم ما همه دارد خدا کس کجا آوردمت ای بد نیت که از آن آید همه غفریقیت تو بران عاشق بودی در دور آن منکر این فضل بودی آن زمان این کرم چون دفع آن انکار توست که میان خاک می کردی نخواست حجت انکار شد انشار تو از دوا بدتر شد این بیمار تو خاک را تصویر این کار از کجا نطفه را خصمی و انکار از کجا چون دراندم بی‌دل و بی سر بودی فکرت و انکار را منکر بوده از جمادی چون که انکارت درست هم از این انکار هشرت شد درست پس مثال تو چون حلقه زن است که از درونش خاجه گوید خاجه نیست حلقه زن زین نیست در یابد که هست پس حلقه بر ندارد هیچ دست پس همین کارت مبین می کند که از جماد او حشر فن می کند چند صنعت رفت ای این کار تا آب گل انکار زاد از حل اتا آب می گفت خود انکار نیست بانگ می زد بی خبر که اخبار نیست من بگویم شرح این از صد طریق لیک خاطر لغزد از گفته دقیق چاره کردن سلیمان علیه السلام در احزار تخت بلقیس از سبا گفت افریتی که تختش را فن حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش گرچه افریت اوستاد سهر بود لیک آن از نفخ آصف رو نمود حاضر آمد تخت بلقی قیصان زمان لیک زاسف نز فن افریتیان گفت حمد الله بر و صد چونین که بدی دستم ز رب العالمین پس نظر کردن سلیمان سوی تخت گفت آره گلگیری ای درخت پیش چوب و پیش سنگ نقش کند ای بسا گولان که سرها می نهند ساجد و مسجود از جان بی خبر دیده از جان جنبش وندک اثر دیده در وقتی که شد حیران و دنگ که سخن گفت و اشارت کرد سنگ نرد خدمت چون به ناموضع بباخت شعر سنگین را شقی شعر شناخت از کرم شعر حقیقی کرد جود استخان سوی سگ انداخت زود گفت گرچه نیست آن سگ بر قبام لیک ما را استخوان لطف است آم قصه یاری خواستن حلیمه از بوتان چون عقیب فتام مصطفی علیه السلام را گم کرد. قصه <تصفح> راز حلیمه گویمت تا داستان داستان او غمت مصطفی را چون زشیر او باز کرد برکفش برداشت چون ریحان و ورد میگو از هر نیک و بد تا سپارد آن شهن شهر را جد. چون همه آورد امانت را زبیم شد به کعبه و مدو اندر حتیم از هوا بشنید بانگه که حتیم تافت بر تو آفتاب بس عظیم ای حتیم امروز آید بر تو زود سد هزاران نور از خورشید جود ای حتیم امروز آرد در تو رخت محتشم شاهی که پیک اوست بخت ای حتیم امروز بی شک از نوی منزل جانهای بالایی شوی جان پاکان طلب تول و جوق جوق آیدت از هر نواهی مست شوق گهشت حیران آن حلیمه زان صدا نه کسی در پیش نه سوی قفا شش جهت خالی ز سورت بین ندا شد پیاپی آن را جان فدا مصطفی را بر زمین بنهاد او تا کند آن بانگ خوش را جست و جو چشم می انداخت آن دم سو بسو که کجای است آن شه اسرارگو گو کینچونین بانگ بلند از چپ و راست می رسد یارب رساننده کجاست. چون ندید او خیره و نومید شد. جسم لرزان همچو شاخ بید شد. باز آمد سوی آن رشید. مصطفا را بر مکان خود ندید. حیرت اندر حیرت آمد بر دلش، گشت بستاریک از غم منزلش، سوی منزلها دوید و بانگ داشت، که که بر دردانم غارت گماشت. مکیان گفتند ما را علم نیست، ما ندانستیم، کانجا کودک است. ریخت چندان عشق و کرد او فغان که از او گریان شدند آن دیگران. سینکوبان آنچنان به گریست خش کختران گریان شدند از گریهش.